کستردگرائی چیست؟ انواع کستردگرائی کدام ها هست؟ چیگونه کستردگرائی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها سلطفانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کسرتگرایی برای رسیدن بر صباح اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کسرتگرایی و افغانستان از رادیو آنلاین را هر بیشن شنوینده باشن. باشنایندهانی گرامی در تفاق اجتماعی، مطالعه و سالار اقتصادی و حقوقی افغانستان، الحسو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه حق سلام و درود و عشما بخیر. و, و برنامه اقتصادگرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کاشناسان و نخبگان علمی افغانستان، اقتصادگرایی را از زوایای و مناظر مختلف و بحث و بررسی می‌گیریم. چشمنداز این برنامه بررسی کارائی برای گذار از منازعات و حل چالشهای اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن افغانستان آمیز و مرفه در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابد کثرت‌گرایی اجتماعی چیست کارایی کثرت‌گرایی اجتماعی در افغانستان چیست چگونه است اجتماعی در راستای حل منازعات و رسیدن به صلح اجتماعی در افغانستان بهره‌برداری این سوالات را از آدرس معتمد سوالات رسانی به حقوقی افغانستان با کارشناس علمی برنامه کاش تنکاشونگی مهمان من در این بحث محترم استاد منیژه بهره جامشیناس و دانشجوی دبی دکترا است استاد بهره گرامی به برنامه‌ی استراتژی برنامه و افغانستان خوش آمدید سلام عرض شما بخیر بصف شما میاد فرصت ما شد تا در از که از مخنکریات اصلی که بدون استثنای ضروری با شما و که هندگان گرامی راژیابیشون در خدمت باشید. تشکر کنم برای اگر باشین بحث از مفاهیم آواز کنیم. در نگاه شما کستردگرایی چیست؟ محکوم کستردگرایی چیگونه شکل گرفت؟ خیلی خود. ببینید صحبت از کستردگرایی یا کنوزولیزمشونه در موقع یک نوی نگرش که فکری که موضوعات متنوع. این موضا تمام صنابی کمارت و صفر میکنه میتونه در که اویلی ویزیسی باشه میتونه در خوزه اجتماعی باشه در خوزه فتحنگی و سیاسی باشه و حتی میتونه در خوزه گراری فتحنگی هم شریک باشه موضوعی تکسرگره یا پلورالیز در واقع اگر بششناسی بکنم ما از دوری باستانی موضوع داشتیم ولی با شدت و خیدت کمتر از دوری نرانساس یا از یا موضوعی شد موضوعی شد کرد و یک حلقه یک فکری یا با یک مکتب فکری وارد جریانات ایلیمتی شد و همینطور وارد جریانات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شد. در اصر حاضر یا غنی حاضر هم امروزو هدیهای جهان شمولی شده که تبلیغ می‌شوند ویژه از کشورهای جهان به ویژه جنوب در فرکانس همین مفهوم ها چه در ارتباطی روسی و چه در حوزه عمومی بیشل از این مفهوم استفاده میکنن و در جهت رانمیندیت و همچنان توصیه کشورها تنه کنند که از مفهوم استفاده بکنند. آنان بهره در میان انواع اگر موضوع بحث ما اجتماعی هست به اجتماعی داشته اجتماعی چی است و های اجتماعی شکل گرفت ببینیم در بحث اجتماعی ما و که باشیم اینکه ما تنوع تنوع صللا بین از حرففید نخر اون چیزی که زندگی مجموعه شما فر قرار میگیره باید بپستیدیم به با این نقوع هست که توسطصدگرایی اجتماعی به ما صدایی میکنه دن بر نلف های تتصاگر های اجتماعی ما بین نمونه بازی هست تو آمار هست که در جهان داریم بلقا در جهان از کشور کشورهای جهان سری 98 درصد کشورها از تنوع قومی و تنوع اجتماعی برخوردار هستند. و دینی هم 15 هم با همیتون از موضو داشت به این موضو برانداره این نهله که اجتماعی یا تکستور اجتماعی قرار میگیره در واقع فیلن شروع کرد در همه جهان سوامن هست و این استفاده میشه از 100 کشورهای جهان قدود 96% تنوع تن اجتماعی دارن که حاکی همون تکستور اجتماعی گوزه میشه و حدود درصد از کشورهای جهان هست که فقط تقومی و تقودی هستند. ای که هم, هم, هم سی شده تا با روند مهاجرت و با استفاده و مبوله، مبوله از خانه ها و بالاخره مثل آموزش بردرش از حالت تقودی بیریم بشه و با حل از یا همان تکسره که ما از خود می در بیاید ما یعنی میتونم بگیم که در واقع در همه جهان شما به شما مستخصوزی کنیم در افغانستان و هم یکی از کشورهایی هست که جامعه متکثر اجتمبایی داره یعنی به لحاظ دینی، مذهبی، زبانی، قومی و افصال هم جامعه متکسر هست انواع, هم، انواع افغان در افغانستان موجود داره حتی ادیان مختلف موجود داشت و به نانم با آمار کم از ادیان مختلف اگر و زبانی هم که ما تنوای زبانی در افغانستان داریم که برساس بزر از آمارها که کلون زبان محلی که در داخل افرخانستان هست و در حیطه از داره فعالیت و ادامه داره در داره از این ما میتونیم خبیم که کار رو بکنم که وقت صحبت نستک و راگرائی ز مشکل این مشکل بنابر نیاز یک جامعه ایلوسی هست. یعنی ما یک جامعه تکبدی یا یک جامعه که فرقه‌الهاده‌ای نیست و ما این فرهنگیستیوسی به آموزنده‌مون یک جامعه تختی باشد، نمی‌تونم داشته کنم که یه جامعه که تختی باشه و نه در تکاسط‌های دروغ‌زدنه و باشه، محکوم به ذوال هست و محکوم به نابودی هست. چون نداره که هر کویایی در داخل این جامعه وجود نداره و در نهایت یک نوشیدنی که یک جامعه سمت، پس عقب برم فصار داشته باشه و در کنار صول نیروهای های اجتماعی دیگر تا عنوان میروهایی به قوه ای پیشرفتت کشور ایادنششته در خوشی به اگر در میان میله ها گذره به پول داشته باشیم اصول اساسی کولگرای اجتماعی را با توجه و مطالات یا شناختی که شما داریم در بررسی اصول چی موداد بررسی میکنیم اون مسول اساسی کشتگرای اجتماعی چیست؟ استیاخوب ببینید ما وقت صحبت از تکثرگرایی میکنیم خب اون یک نوع فشار کلیی داشته که تجزیه تجزیه شده تئوری و رفتاری تنوع درست و این تنوع هم در چه دیدگاه های مختلفی سیاسی و اقتصادی رشته های مختلفی هم صاحب تاثیر کرده بنابراین علاوه بر اون ساختسازی بکنه وقتی صحبت از تکثرگرایی میشه و تکثرگرایی است تکثرگرایی اجتماعی میشه علت چی هست, در گیره؟ ما معلقه هست در همین که از همین برای ما در میگیره مثلا ما معلفه ها از در شروع در همین جوامع که قراره نمونه بتا سوئد برای کشورهای برای پیشرفت اقتصادی استفاده کردن میتونم اون عامل معل باز نو کنه. اینکه تکثر گرای اجتماعی اولین مسأله از اوناییه که معلضی که معاملات اقتصادی در داخل جامعه وجود داره این که ای هست. یعنی که یک وحدت واقعی در داخلات مشکلی در وحدت فکری یا وحدت نفسamati بدی وجود ندارد بلکه در وجود دارد و همینطور مثلا بحث وفاق اجتماعی مطرح میشه و صحبت از تکثر گرایش‌های فردی یعنی و طلبات اجتماعی مختلف در داخل جامعه از حقوق برابر هستن. به و مساوی برخوردار هستند به هیچ نوع برتری‌خواهی یا به اصطلاح در نباید وجود داشته باشه با من تا چه اجتماعی در وقتی انجام نشون داده میتونن علاوه بر اون بوزوی که در مورد از صحبت همسته ای اجتماعی هست علاقات مختلف اجتماعی که در داخل جامعه فعالیت می‌کنند اینها خود در در بیته اسپورت در سفارت در که خو یک اجتماعی متفاوتی تشکیل هستن تو ولی در کلیات آن تا نمونه های سری یک در یک زندگی می‌کنند تاکنون هم کشور و قوانین واحد وجود داره مثلا در سنگیده هم طاو همون قوانین میشن که این نشون میده که مجموع از های که شما میگفتن صندی یک همبستگی بین از داشته باشه و این همبستگی در سطح قانونیت برقرار باشه علاوه اون اعتماد اجتماعی و مانند تسمه قوانین واحد کشور وجود اجتماعی باشه وقتی صحبت از حلقات اجتماعی که در داخل یک اقتصاد وجود داره، هر آنچه اجتماعی فرقی داره کرده اینها خود برکن نمیدانند و خود هم نمیدانند. و در این حال نسبت به حلقه اجتماعی دیگری که در قابل اصل قرار داره، حالت تقابل و سازدار در حالت تقابل و قرار نمیکنند. و اینها برای در صورتی که نیاز باشه در صورت که یک نیاز جنبی به میشود متوجه شدند، اینها هم بستگی با هم و در و فاقد با همدیگر و در وکسلو تمخاری با هم دیگه مثلا همین مسئله ی جمعی حل بکنن این نشون میده که اون قضیه اتم هموژنی که به هم دیگه در سطح خورد دل یک کشور واحد مثلا انگراخاستون مثلا اینها میتونه که همون کشورهای بونونیا خانم دیگه چه سری ایمی تاثیر بکنه الان در اود بو درشت مثلا از کسب گراییش همای در بکنیم هم که کوهای و صحرو کشمای در داخلش وجود داشته شده. ببینید فو... و صحرا چه شکلی هست. بر وضعیت دینی که در داخل افغانستان تو که بر اساس دیدای خردی برتر میدانه و سعی میکنه قانون خاصی شاولت اگه خود بعد اقوام های در این بر این که جامعه یک نواخت و یکسان و ای این یک نواختی جامعه یا بودن جامعه جامعه حق و پویایی در اتفاق نفته وله برعکس از در سر که اجازت آاض که دیگر به های اجتماعی بالا اقلیت باشه بلا و اصلا دردی در که در اکثریت باشه این ها هم کویایی داشته باشن و در, در جه از تقیت ارزش های اجتماعی تح وبر از داشته باشن زمینه بر حاصل در این صورت شاهدی از پویای و اجتماعی داشه. این پویایی و ترکک اجتماعی از لت همین مختلفه که در داخل یک جامعه بوجود داره از بطن از سیراز دارده داشته شما بشه علاوه در اون نفیل میکنم که ما در بست تکسرگرایش در نخواییت در صورتی میتونیم این ادار داشته باشه که یک همتیستی مسلطانیست وجود داشته باشه اگه معنی که افراد جامعه تاکید میکنم او سادک پیشترش داره که افراد جامعه همدیگر دیگر با عنوان عضو همون جامعه رو پذیرند، نه با عنوان مستقام، خود برای هست معلقه های مستقامیت اون از طبولی و ممثال اون نفاید به محدود بود برد. در صورت که همون عضو یک جامعه در صورت با عنوان یک کلیت اون رو و در مقابل هم دیگر با یک عضو و واقعی کشور و اصلاف فعالیت داشته باشند و فعامول داشته باشند در صورت ما میکنم بگیم که یک جامعه دارای بیشکلمایی تکسر اجتماعی یا به امون کسرت اجتماعی به بابره البته یک دانشان وقتی اجنامشه بسید شکت در مبحث کارایی گرایی به صورت کسرتگرای اجتماعی اگر به اینوان یک نظری راه و کار در نظر بگیرین در افغانستان، و در سامپکس افغانستان شما کارایی پستدگرایی اجتماعی را در مود افغانستان چیگونه بررسی می کنید ببینید ما پیش از اخلاصشون که افغانستان بالا بر علاوه های اجتماعی فرهنگی در رابطه با سولوپون شروع متخصن حال اقوام مختلفی در, در یک کشور حضور داره زواستان عدد وجود حضور داره وجود داره اقلیت های مذهبی هست، اقلیت های در این کشور و یک کشور متنقه هست، یک کشور رنگارنگ از یک کشور نگیم که هست متنقه ولی در مورد که باید خیروز نتونست این صدقا هست یا دخفاق هست که شاهد نو ام برطری یک خرقه خاص هستند که با اون که فرهنگ خود عقلی خود سنت ارزش خود رو برای اقوام دیگر تحمیل می‌کنند یا از روش‌های می صدآمدن میکنند یا هر مکان احکام دیگه را مشکل قرار می‌دهند بس این امکان که فقط اما چارچوب سنتی و چارچوب فرهنگی خود یک است کلیت قبول تحمیل بکنن واسه درخل کردن یک کشور تکبودی بسازن به خاطر اینکه بسازند در افغانستان با وجوده که گفته نیروهای بلغوبه متکسر افتماعی در داخل افغانستان وجود داره ولی بله بسرسازی بس بسرسازی نشده البته به این مکون نیست که هیچ بخشتنی چیز اتفاق نفسده خیلی ما اگر در دوره, ام دوره های مختلف تاریخی بمیشه تاریخ معاصر افغانستان خاصه باشه این مسئول در برخه از تاریخ خراش های انجام به تا معلقه افتماعی سرخنگ یا های اجتماع فری ات بث به ناخ آقای که در شده از از, از که اشتماعی اشتماعی این که بالمانش فرمانده این کشور از حقوق مثوی با دیگر از و دیگر طلا حقات اجتماعی رو برخدارند تلاش های انجام شده بود و اتفاقا در تمام برها های زمانی توداخد حد تونسته بود که، بستن بر برشینه بر متاسفانه همین بسوباتی بس سیاسی و شکلندگی وضعیت سیاسی افغانستان موجود شد که وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان هم شکلنده باشه یعنی با تغییر یک حکومت اوضاع اجتماعی فرهنگ هم بلا خاصله کرد و این موجود میشه که یک صوبات و یک خواهی مستحقمی برای این باست شکل نگیره و همون خاطر در یک جاوی شما مثلا میبینیم که حلوات اجتماعی فرهنگی از بعض از, از خبوخ و امتیازت مصابی بردار داردن ولی در یک دوره تاریخی دیگر متسفانه از همین خبوخ شدن و حتی در بعض ما سایستیتیشن مخفر میکنه که اما حالا تشکی قرار گرفتن و امسال خواهد رب میگیره این گرفت از اینکه عوامل سیکسی با عنوان عامل تاثیر گروسه به فرس خط به حوامل قرار می و عوامل شمایی فرهنگ فرس قرار و هم موضوع سرگره این در افغانستان بانوان یک مفروده یعنی فائل بانوان خائنار سیاسی از مالفه های شمایی فرهنگی ما بانوان یک استفاده کردن و اهداف و خود برای بر دادن ما در هم شاید همین مسئله هم هسته که یک, یک حلقه یک هست مثلا که همون باور و افیده و ایژیوژی صانتی خود بردگیران تقنید بکنن این کاملا در حساب به موضوعی تکسرگرایی اشتماعی قرار داره این کاملا مساق تمامی خواهی یا انحسانگرایی یا جزمگرایی یا دگماتیز در آن که شما هست می‌تونه اسمگیریم مساق همین هست که فرد یا گروه یا بلاکره یک هفته اشتماعی سعی می‌تونه که ازشتها و اصولها رو نگر حلوات اجتماعی دیگر اینو دیده بگیره و اونها مثلا بنفع نت بکنه و اونها نپسیده ولی نگلش رو بینیش رو خود رو پرز فکر خود بانوان یک مسئله یا موصول قابل پسیدش تقنید بکنه این ها موجود میشه که همین چون در تزداد با اجتماعی مسئله جزمیت یا همون بنفع دغماتیس میناکران رو این موضوع تخصصی مطالعه شاید تاسف، به همون خاطرم بنیان‌های های درآمد در دفل افغانستان در دو منطقه مختلفی شده در دری، بسیار شکننده حس شکن و استرامه بسیار متفاوت است. مشخص کنم از اوضاع کمونی ما و تلاش‌های که شما یاد شدن در راستای ترویج کسب درآمد برای بهان نیازنسازی کسب و اجتماعی در افغانستان انجام شده. به شما این تلاش ها،, ها یا نتایج عینی را به دنبال داشته هست اگر داشته کنان مصداقه های عینی از قصدرگرائی، نخصوص قصدرگرائی اجتماعی را من را از پانستان داریم؟ ببینین، گرشت خود مسادان از دوره های تکاریفی که با اما و اگر ها شباید به زیاد هم درها هستند که مشکله ولی ما یک دوره یک دروخ در دوره دوره ساخت ها هم بود که منامه دکه ی دموکراسی شد در دوره امانالا خان به تا حد کامل نمیتونه این دوره هم نقره هست باری در اون دوره هم تلاش های انجام شد تا گروه های جنسی ایتی گروه های قومی مختلف، های دینی و مذهبی مختلف و همینطور های قومی در داخل افغانستان فرصت آزادی عمل داشته باشند و این موضوع فقط در قالب قانون تثبیت شده، این اینکه که عنوان یک منشاء رسمی، amending قانون تثبیت گیره که از حقوق و امتیازات برابر با دیگر اعضا، یعنی تمام اقوام و زمان ادیان و حقوق حقوقی به منزله برابر داشته باشند در داخل و تا خود این پروسه شود. بالا ولی چرا محکوم به شکست شد؟ به که در طول همون ده سال حکومیت هست امان الله خان بسترسازی نشد یعنی زمین ذهنی زهنی نشد هم و همون خاطر به یک از غراور پایی نیمه موجب شد, شد که در بین مردم که هنوز به این, به این درک با شعور لازمه جمعی نرسیده بودن که در کانال خود یک فرد قیل را به پذیرند خیلی وقت نگاه از گروه خطوهای رزنسان اقبا ورقیدی خوطا در کنار خطوها و همون خاطر در نقای که کم کم این محلوم به زواج شد و به به شکست شد با در دههی ده جموکرسی صاحبان هم با همین موضوع کمیش هم موجودیم با هم سکیم نکنم که در هر دوی این دوره نفت وارد از روایت های با حوض خلاف این گاها و خلاق این مورد حسابیت میکنه ولی ما در مورد یک ایراد صحبت حساب میکنیم که در همین دوره تاریخی این اتفاق افتاده. در خلال دهه‌های اخیر کام هم به تلاش‌های حد ادعا در حد استگمولیک در قالب قانون در مورد مساوات، در مورد برابری، در مورد آزادی عمل ادیان و اقوام و امثال هم گفته شده در قالب قانون. ولی متاسفانه در عمل آن که باید این نوع مصاف پیدا هرکار این ها می کنم که تلاش های صورت و در کنار تلاش که زمین استازی زمین ها صورت نگیرید چون به صورت و سبیل با و نفر با حالا از بالا هایی که این موضوع در داخل جامعه بفرمانند ولی بدون که زنی یا کاربر دامن داده بودند، بدون علتی که مثلاً شرایط و در فردا و عرضه این موضوع به شکست شد و دانشمندان مثلاً نهفوندگیش میگیرند. و باورم با همچنین دلورهایی میتونه عنوان دلورهایی که کارش های صورتگیری با همه نهفوندگی کار میکند، ولی مطلب به کارش جدیده. شرکت‌هایی که در بلوژی، که وجود داره در جامعه در. برای برا ترویژو و نده اززی به نظر شما چگونا چشها را با صد مبتل بسازین و زمینه را برای ترویژو ناد سازی ثرتگرایی ل کدگرای اجتماعی با توجه به ماهیت متنوع و متکثر جامعه افغانستان فراهم میازیم اینجا خب ببینید خب اما در مورد از که وقتی صحبت از تغییر میشه در داخل جامعه با روند تغییر ذهنیت حاکم دار که انتظار داریم انوار مثلا با و کارگزاران در سطح بالا تغییر پرمول بکنن و بعد ما مردم هاشون به تثیریم این یک بودق هست که بعد درسته ولی دیگر درسته اما اون من شروان در خانسان یا به اون داکنر این هست که ما با عنوان عضل همان جامعه، با عنوان یک نیروی همان جامعه دارای این قدرت هستم که در صورت که همین قدرت فردی و قدرت جمعی تبیل بشه قدرت فردیر ایجاد میکنه در نفلی اشتماعی در نفلی هستی که گرایی اجتماعی من فکر میکنم به احتمال جا هلنسو در اشکالتی که فیلم مثلا نه قانون حاکم هست نه, مثلا نه حاکمیتی که بزنه اناصفه همان تکاسورای اجتماعی تضییع بکنه این هم پوکی نیست که من الان دارم خالصم ما امثالهم یعنی بنلونی که از این جو بود قضیه عامل ثغی یک بود از کارگزاران سیاسی هستند فعلا امید ما از طرف آنها در حد صفر است ولی در طرف دیگر مردم قرار دارند که چه با افزایش آگاهی و این خمی ذهنیت مردم موقعی که هم تکاسورای اجتماعی در بین خودی یعنی در بین خود مردم بگیم تغییر اساسی تضییع بکنه بنیان رشته فقط دولت تو آن نحقق داره اونها و خ اون ها هاافن هست و در بالا به غیر رس هم الک مردم میتونن که با هم دیگه این محصول یه یه موضوع ثتییت بکنن یاشه یک موضوع بر ها رو بکنم که الاقق اینکه گفتم در بار پای تاریخی مختلف به عنوان ابزار از همین مال پایش شما سرحنگگی است استفادهرش شده ببلله در در اطیت یا در واقعیت عام همین مردم بالاخر در درییت جا های اجاسه اتش شد که اینها در کنار هم قرار بگیرن و این تجربه تجربه خوشایندیم هم بود پیشتر همیشه برای در مورد موضوع. فکر می کنم همین تجربه این بار مزدوم‌تر زنده بکنم در سطحی که مهیا هستند. به عنوان که اندکی همین موضوعی که کشورگراییش اجتماعی در باشند تقریباً بخوانم. حالا دادگاهم یادم می‌ری بخوانم. به این موقتی صورت گرفت کشورگراییش به پیش از اولین کبدی جهان شومن هست. همون کشور در یک اکبر هاشمانی با هاکونیات این روبرو دیدن که اجازه دادن نمیشود افراد مختلف و مختلف در اونجا روییت پیدا بکنند. درpostcss در نهایت همین فرآیند جدید که از بالا شروع شد یعنی از وقت چند شروع شد تا به های امکانات در داخل جامعه postcss و inmoso trust connect most assuming logic in ما در نمی داریم می در طول این مدت اون که های مثلا io بکنیم در درایب این مدت که یا امکان به خاطر تدریسون وجود داره یا هر نهف دیگر و در دست موディア قانون لیست بکنیم در قوله این قانون باید این مصداق درست باشه چون فقط شامل تاکید اصلی ما بالونه دانش توی انجام که نظام آموزش پرورش بر باید تقویت بشه در این عب. این نظام آموزش پرورش بر دو جنبه جنبه که غیر داره جنبه قریب رسمیه که زمجبین آموزش پرورش قادرانی گیرد اون به ترین محالفه از او خانواده هست خانواده ها و در کمار خانواده ها رسوم و هم برمانی منابع آموزش پرورش در این اونصوری ها این دو اونصوری که فیلن به به برای جای دیگری اونجوریه قرار داره بهش از مردم نیست نه, نه هم از هم وسانان چیزینو از همین دو آنصر در شرایط که در شرایط قرار داره در تقییت همین ایدئولوژی تسلط اجتماعی عدالان بکنم و تلاش بکنیم و بعد هم گفتون در چه دلی اگر تغییر سیستم اومجه رودین مثلا که زمینه بکنم که در حال بخونیم زمینه که کارگزاران از گیرسی در این موضوع کنه در جامعه و نفس هم میدیدم و امسان. این ها بانه ها با, با, با خلق های کلی که در چون مدت در داخل افغانستان تقرییت بخونه و افراد رنگان انگزید یک پرچنان و واقعه ضرار در پتر همین موضوع کنه میتونه یک جامعه متکسر و نقصه بشیم رو بشه. در نیان مدحس میان سالت و مسئولیت شهروندی و انترابی ما از سرسکره مطلب کردم مسئولیت دانشگاه ها، اتاقای فکری و مراکز علمی و اکادمی که در راستای ترویز و نهاده نسازی کسرتگرای دوپسوز کسرتگرای اجتماعی چیگونه مرژه خب، من دیشتر اشتاری داشتم در مورد نصب آموزش کردش که مدرسته و دانش رو عنوان اناسطور نصب آموزویش در نقش منکانه در عمر تدویشتی که اصول گره یه مشخصه که در که در یک فرایاند بطیب و آهسته در صورتی که جز از نصب تلیم و تحصیدی بشه مشخصه که به ذهنیت ها میتونه تحصید کسی نمی نباید <سؤال> طرقمش بکنه کہ ما برای تغییر اجتماعی یا فرهنگی یا سیاسی، چیزی اسی عملیم مالفی که <سؤال> از مختلف. یک مننده عمدی هست که روش درست و مناسب و مستقنی ام با گوی این و در افراد با عقاید مختلف با بالاخر اقومیت دیین و از مختلف می کنن که هر دارند که بکنیم ساویانه با شما چ میکنن در که با همین مات در مکتب و دانشا برای دانش آم مو دانشجوی متدیس باشه ذهنیت از یم از نسق به این موضوع ح که بیشتر گفتم این فرانده تغییراً هنیت تغییر ذهنیت ها آغاز در یعنی که در مبحث در مبحث علاوه بر با و دانشگاه و خانواده که بیشتر آنمال کرده با مک کلری که از زکرسان خا تومان کرد نیررو های یا بهش گفت عنوان آنظور تثیرگذار در جامعه افغانستان این همتونن نقش سازنده داشته رو علاوه آا و سالاقها میتونن در والب به برنامه جدی تحلیلی این مفقوع دست داشته باشن بدون مطابقه. این هم در حال برنامه های به بر آماده ایجاد ا دیگر هم در این داشم فقط این نشه اجازه ها در بسیار میشه خیلی بسیار گفتم انت پرانتامیه در دیگر به سه هست فعلا رسانه باز است حالا رو اون یک مسئله نگا میکنم بشه راه بکنم که که حالت حال وضعیت ایرانی هم که این روان در بکنه است. بهشین مانند مثلا ما یک فردی که جزو یک حلقه اجتماعی افتخاری خاص هستم به زمینه از قرار میگیرم و آگاهیم دارم نسبت به این که بانوانیک فرد، یک شرمنده همین حال کشور، بخواهد از ایشون، بعد کات کردن و حاشیه قرار کم، پس به این آگاهی دستیم، این مرحله اول حسند، حالا دومی نکه دچار همین دباید تخفیفی بکنم اعتراض بکنم این اعتراض فقط این نیست که ما با فرچنو در خیابان انمه تموم خیلی این یک و هست. باید از که بسیار مصدری گزارو تاثیر هست بهش پای از تخفیف همینه که بعد در تونی به و در شرکت آسیات اثر که همین که تصوگرای اجتماعی تاثیر بکنم به تاثیر این افسادی که شدن در مسئولیت این درد که گفتن ما عزیز و ساوی هم دوست دارم که این موضوع این موضوع نصر گرفسه که دا دا مشه که در کسی اجتماعی میتونه نفت دازه این دیده داشته باشه اوکانا تأکیب میکنم شده باقای به هیچ وقت صحبت از راحل مشه خب ما یک سر راحل های آرمانی میسیم ارائه بدیم ولی من تأکیب دانوان دانش رو همین هست که ما از راحل های آرمانی برم سراغ راحل های باقی بینانه به همین در سر واقعی که پیلا در جامعه ما حاکم هست موچی راحتمار مشکل بیرون بشه و بعد از اون درجهت تفریت همین موضوعی که از سرگروی و حتی سیاسی قدرن بکنه به همون خاطر که می کنم کنون های در دست است که خانواله هست رسانه هست و بعد و مکتب باز شد مکتبی و مکتب این ها بانوان علاقات تقریب میتونم که از استفاده بکنم و باحت بگیدیم پشکر در بحث کارایی کسرتگرائی خصوص کارا، کسرتگرائی اجتماعی در صلح اجتماعی در افغانستان بدگاه شما چیست؟ ها که یک آمین خیم کننده کسرتگرائی اجتماعی هست یک انت اجتماعی و تنش تنش میگم حالا جنگ نمیگم تنشی که بین اقوام و مذاهب و زبان های در افغانستان ایجاد شده یا ایجاد کردن در حقیقت همینه که یک حلقه خاص که خود تفریح بکنه بر از دیگه این وقت در صورت همین وقتی مصوبات پر مسافر های اجاسی امنیتی هست به معنی که این آمل کنش شد درسته برای در تقابل ای تیز قبل شده انتی تیز از میتونه باشه؟ انتی همینه که در تقابل باید تکستورگرای اجتماعی هستی میتونه کنش در برد کنار و در کنار از دو چیز تونه اجتماعی به وجود بیاره این خود قصد هم تصمیم گذارد هستم از اول برنامه هم تا به مختلف در واقع هم اکثر کرده که چرا نشانه کسورگرایی اقتصادی در ساختار اجتماعی در ساختار ملیت تقسیم باشه و علاوه بر أو موجود موجود اون وجود به اصطلاح یک جامعه باشه که تخلف و قوی وجودی که دیگه بیا احزیان مختلف بیا هم مختلف بیا های مختلف در افغانستان یا هر کشوری دیگه اگر فرصت در ministracy بشه دراز فقط عدد قانون کشور ولی که عقب این میتونه در نهایت از اجتماعی و استمانی اتیاش در بالاتر باشه، این از رو نشه، مشخصه که اینها به خاطر ملیتی هستند فقط، چرا که رسانه‌ها اینان که در نمایان پرتشون جامعه و هم فقط میشه که یک کشور در یک دایره بسته باشه و نه ثانوی از قابل قبوله برای همه کی دار استرا. چنانت در این مساله تنش بین حلقات اجتماعی یک بازی هست واخت واخت یعنی هیچ گروه برنده نیست چه همان در حالستان با معنی کشوره که مساق عینی همین مساق باشه در طول در یا سه دفاع وقت یک حلقه اشتماعی یا حلقه قامی یا حلقه دیوستان و بخیر بخیر بر کل د... بر کلیت جان خود تحبیق کنه تا روز امروز موضوع تنش بین اینها وجود نو داره و در این بازی هیچ یک از حلقات برنده نبوده مستقع. یا خوشبختانه بود که به گفته هیچ وقت سالگرد برنده نبوده، این بازی بازی با خبر باشه. ولی برای از او کسی روی اجتماعی با یک بازیی بودگو می‌آورد، بهش یعنی تازه نیم یک اوز یک هلکاییش روی فاضلی صنم تا سعی می‌کنیم تا از کامپوزن ترف‌المعامله کندارش هم که این که این کاری رو انجام بدم. و این یک بازیی بودگو باشد که به تشکر کنم بهره اگر به بحث جنبندی کنیم برای جنبندی کلی شما نقش کسرتگرای اجتماعی را با ترجور و تعداد افرام تعداد فرهنگ در جامعه مثل برای گذار از مناظر و حل چالش های اجتماعی ازیادی فرهنگی در کشور وجود داشته و دامیدانی بشاید وجود دارد از کسرتگرای اجتماعی چگونه بهره برداری مفیقی مایم؟ چند راختار مشخص و کار بود در خدمت شما هستیم به این بسیار خب بسیار خواب، گرشت چه تا موازیم که اراعی راحت در این موضوع فقط این ازمان ایزانش را می شه سی و سی و اون مختلف دیگر هم در عمر راه شلیک باشند. حالا خود ما در ویدیو جوانش کنستی همیشه خاص است که کرد. که ما در جهت تکامل گرایی جامعه ما که ما امنیت حلالات جامعه با نفت هر شدن به در نظر قرار آورد اینها به جای اینکه بیایند از مخویات و بیشتر بر همون مشکلت که بکنم مثل فرمکان فکر از این راه از داشته بهتره و این هنه که ما یک اتفاق و اتخاد بین همین حلوات اشتماعی و دیژانت رو خونه و این ایجاد از این برنگرده به این که اگر در زمسی مردمی اتفاق هنفته باید نخبگان همین حلوات با اشتماعی نخبگان علمی اکادومی که من دو نخبگان سیاسی همچ کنم با برقه نیستم نخبگان اکادوم حلوات اجتماعی مختلف در داخل افغانستان باید به یک طرح باخید به یک اتخاذ اجتماعی دست پیدا بکنن و همون طرح اجتماعی باخید سعی کنن که بر اقوام خواهد یا عمود در نشمای اجتماعی فرهنگی به این طرحی بودن که همون نشب بکنن، پخش بکنن، متفقیت بکنن این بایمان یک از جاحت هاست ما اقوام مختلف در داخل افغانستان و ایشون فعلا چندین در افغانستان نخبگان خود دارن ما در خام قوم خود نخبهای آکادمیک دارن که قدرت توانایی خلق روایت تکسدری اجتماعی در داخل همان حزقه قومی خود دارن ما فعلا توانیم که از همین نخبگان آکادمیک خود کمک بگیریم که اینها با هم دیگه ارتباط بشن یک گروه واهلی رسوسان یک بنافاذ در رمایان این قسمات تکسدری اجتماعی یک کاره اجرا بکنم و یاد یادداشت کنیم. دوم اینکه من باز هم تأکید میکنم صورت و حال فای آرمانی نمیکنم، باز هم که کردم در دسترس هست. دوم با هم تأکید میکنم اگر رسانه های مسکونی بیشتر از حالا که کنم شد تهران یا پنجاب رسانهای بین المللی هست که با نظرخالی ادغام میکنند حالا در داخل که با نظر رسانه های خودش هستند رسانه های خارج مصرفی در کشور که در فصل تیشتر خالی ادغام میکنند این پد است که اگر اما نیاز به تأهده به تنهایی وظیفه دستگاهش چه یاد تأهده کیش داشته باشه فکر میکنم که همین نهفگانه با یا نهفگانه اکادمیک توسط لقایی به که به عنوان یک افسار و از به نیت آن متقاضی میشوند. استان مازندران از سویی گفت من گفتم که نه تنها به بستر افغانستان که انتخاب بستار در این حال یک بستر مسلمان هست، اسلام هست. ما یک حلقه و دون حلقه ملاحا در دا داخل افغانستان داریم که به بسیار یک حلقه تحصیل روزا در ذکره این ای ای موضوع تحصیحانه به خوشبختانه بگیم و هلهاد از این حلقه از این حلقه از ملاحان یا همانیان با سواده که از دانش دینیه بیشتر برخوردان هستن و در بند به همین سنت های فرس توان نکنم از اینها بامان نیروهای تثیر بزرگ استفاده بکنیم، و در همین نیروهای تاسیسی بزرگیاری ما همیشه در سطحی اعظم تاسیسات ریشه دارند. بالا ها زیرش مثلاً میگم در هم که شکاف <متصف> اشرافه در مورد موضوع وجود نداره، خب ما در هم شاید دتفکرشون در داروها بودیم. و این موضوع میتونه که بامان یک یک بشه. ما تا کدام سو بم، من هم تاکید کنم خانواده ها بسیار نقش دارند که خانواده همانطور در ذهنی افسازیه اعضای خانواده خود به میشه کودکانه شما در تیم نشسته است که تاسیس روزا رو زنده و برازنده اضافه بشه ماشن. خصوصا ما از جایی که نهادهای مختلف در افغانستان نهاد آموزش پروریش همسان هم الان در داخل افغانستان کلیت، تامین خز فعیل هستند و ما نمی‌دونیم از این بماره راه حل استفاده کنیم ولی در طولانی مدت بعد اگر این نهاد خصوصی برای بالایه آغاز کرد این نهادها همیشه نهاد آموزش و پرورش که شامل مکتب و باز، این فرمان بازماندگی رو هایت کسی دوست داره یا حدی ترجمه شده است که در کل هست که تاکید روی این مفصلی به این دلیل که نصف مفصلی در نهایت آن در لباس مختلف خود پس در هر و تقاضی دیدم نکنم که این ها بودن من در نهاییت امر این رو می کنم عنوان بکنم چنون وقت به که در افتحالستان صده ها هست این موضوع تجربهش بوده و که پروات سیاسی نتونستن یا نخواستن که در جهت تغییر این کشمال نقش داشته باشن و به با همون خاطرم بسید می کنم در دوله قرار دانم که برای ما این موضوع ثابت نستازه که پندها ر از معلوم است نتیجه سفر است نتیجه یعنی این نیروهای مردمی که شامل فیشتران، شامل نیروهای مردمی شامل همه لحظه‌گانه اکدومیتی ما، شامل همه بسته‌های خانه‌های خا، رسانه‌ها، نمی‌فاعم، شامل حتی آن که از لازم دارند. تاکید می‌کنم این ایده سواد ما تاکیدی کنده می‌دانیم لحظه‌ها، هدایت ملاقات‌هایی که سواد لازم دارند، این ها با که در روند تغییر باشند. ما بگیم امید ما باید به سمت این علاقات باشده. نخبه ببینجو نخبه ها نکده می کنم در حد هم بوجود داره که مثلا روی موسو کار کنم. تمامت حرف هم روی را حال ها و همین نوعه کسی بسید. استاد منیجر بهرد جامع شناس و دانشجوی دوره دکترا از حضور شما در برنامه کسیدگره و اکمه هستان سپاس گذارند. همچنان همراهان گرامی از حضور ارزشمند شما و همراهی شما در برنامه کسبت گروه اتفاستان سپاس بذارم تا برنامه دیگر شما را به خداونده مدار بسید دارم. برنامه از طرف موسسیی مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسا در همکاری با بخش نشراتی این موسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و ناش کردید.